سومین عادت ضد تنبلی ایده هایتان را ثبت کنید بهانه ای که از میان می رود احساس استیصال می کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است. آیا تا کنون به دلیل حجم انبوه فهرست کارهایی که باید انجام بدهید دچار حس استیثال شده اید؟ ما تمام سعیمان را می کنیم تا همه کارهایمان را انجام بدهیم؟ اما اغلب به نظر می رسد تعداد ساعت یک روز برای انجام دادن ی آنها کافی نیست. جالب است بدانید که این احساس یتصای که به ما دست می دهد به دلیل حجم کارهایی که هنوز کامل نشدهاند نیست، بلکه اغلب حاصل چگونگی پروراندن ایده ها و برنامه عملیاتی شماست. طبق اثر هر فکر یا ایده ناقصی آنقدر ذهن ما را به خود مشغول می کند تا اینکه بالاخره یا آن را انجام دهیم، و یا برای چگونگی انجامش برنامه عملیاتی بریزیم. به عبارت دیگر اگر شما به طور مرتب ذهنتان را از ایده هایتان خالی نکنید، آنها بر روی تمرکز شما بر انجام پروژه‌های فعلیتان تاثیر منفی می‌گذارند. اثر زایگرنیک به صورت مستقیم بر عادت به تعویق انداختن کارها تاثیر می‌گذارد. زیرا این اثر وقتی که صدها ایده برای انجام دادن در ذهنمان داریم باعث می‌شود از دست به کار فعالیتی خاص شدن خودداری کنیم. اما راه حل کدام است؟ عادت سبت ایده ها را در خود پرورش دهید و نگذارید حتی یک فکر یا ایده از ذهنتان بگذرد و ثبت نشده باقی بماند. حتی کار ساده یادداشت کردن هر فکری که به مغزتان میرسد و کنار گذاشتن آن برای استفاده در آینده به شما کمک می کند بر روی پروژه فعلیتان متمرکز بمانید. به همین دلیل هم هست که عادت سبت ایدهها لوب های خالی که توان انجام کار را از ما میگیرند را از میان میبرد. به عبارت دیگر وقتی ذهن شما لبریز از افکار درهم و تصادفی است، شما نمی توانید صد در صد خود را ملزم به انجام کاری که در دست دارید بکنید. حقیقت آن است که ما همواره توسط ایدهها بمباران میشویم. ایدهها گاه و بیگاه و در لحظاتی نظیر ورزش کردن، صبحانه خوردن، رانندگی یا رنگ کردن یک اتاق در ذهن ما سبز می شود. پیش می آید که در نیمه شبی با ایده بسیار عالی که به ذهنمان خطور کرده است از خواب بیدار می شویم. فرقی نمی کند که این لحظات الهام کی و کجا رخ می نمایند. شما باید همیشه آمادگی ثبت و ضبت آنها را داشته باشید. دو راه برای ثبت ایده ها وجود دارد. اولین راه روی کرد قدیمی کاغذ و قلم است. تنها کافی است هر کجا که میروید یک دفتر یادداشت ساده به همراه داشته باشید و از آن برای ثبت ایده هایی که در ذهنتان جرقه میزند استفاده کنید. انتخاب بعدی استفاده از نرم افزارهای سبت ثبت ایده است که شامل گزینه هایی برای یادداشت کردن ضبط صدا و عکس گرفتن می شوند. یکی از بهترین این نرم افزارها را می توانید در سایت اورنوت پیدا کنید این ابزار فوق العاده ای برای ثبت و ساماندهی اطلاعاتی است که در آینده می توانید به آنها دسترسی سری داشته باشید ممکن است یادداشت کردن چیزها را کار پیش پا افتاده بشمارید اما به سرعت از کارایی این عادت شگفت زده خواهید شد این کار را هر روز انجام بدهید تا ذهن منظمی داشته باشید که به شما اجازه می دهد کاملاً بر روی پروژیک فعلیتان تمرکز کنید. چنان که گفتیم یکی از دلایل به انداختن کارها احساس استیصال حاصل از مشغولیت ذهنی است. وقتی نگران صدها چیز دیگر هستید سخت است که تنها بر روی کار جاری تمرکز کنید. با عادت سبت ایده ها شما احساس آرامش بیشتری خواهید داشت. زیرا می‌دانید که می‌توانید هر فکر را در زمان مناسبش پیگیری کنید. اجرای این عادت در اینجا به چگونگی استفاده از عادت ثبت ایده ها اشاره می شود. 1. ابزاری برای ثبت هایتان را همیشه همراه داشته باشید. دو، هر ایده‌ای که در ذهنتان جرقه میزند را بلافاصله فاصله آن ثبت کنید. سه، هفته یک بار این یادداشت‌ها را مرور کنید. چهار، برای پرداختن به هر کدام از این ایده ها برنامه ریزی کنید. گفته شده است که هر کسی در زندگیش روزی ایده‌ای به سرش میزند که یک میلیون دلار می‌ارزد. من از صحت این گفته مطمئن نیستم. اما میدانم که خطور ایده های عظیم به ذهن تجربه معمول در میان همگان است. پدیده غیر معمول آن است که یکی از مردمانی بشویم که هر فکری به ذهنشان می رسد را با دقت ثبت می کنند. پرورش این عادت به همراه چند عادت دیگری که بعداً به دانها خواهیم پرداخت به شما کمک می کند در دست به کار شدن بیدرنگ به هنگام آغاز فعالیتهایتان موفق تر باشید.